بسم الله الرحمن الرحیم جمع الاسمی جمبثن اسم نصفت چی؟ اسم المؤنث الثلاثی جمع اسم مؤنث جمعا سالمن ولی چی جمعی؟ اسم های ثلاثی ها چی اسمهایی؟ در این درس میخواد بگه اگر اسم ثلاثی رو ولی اسم ثلاثی رو می خاصم جمع مؤنث و جمع سالم ببندیم اون موقع چه تغییراتی می آید رأت الذبيا تو البستان اصبت امام حملات الزمان ذبلت الوردات درسته؟ ده قاعده با فتحه داشته باشه. قرأت دعات، خب ببینید قائدور چنین بیان می داره اذا کان المفرد اسما ثلاثیه زمانی که مفرد اسم ثلاثی باشه مفرد چه باشه؟ اسم ثلاثی باشه بعدش صحیح الان این و صحیح باشه شرطی که این و باشه؟ صحیح باشه مفتوح الفل داشته باشه؟ فتحه داشته باشه ساکنه ها این الفل هم صحیح باشه و هم چی باشه؟ ساکن باشه مفتوح الفائی این الفل دیگه چی باشه؟ فتحه داشته باشه واجبه فتحه اینهی اندالجمعی واجبه که این الفل فتحه بگیره هلگام جمع بستن ماننده چار مثالی که آورده غمبیه چون فا الفل فتحه داره و اینالفل ساکن هست در مفرد ذبیه هم ساکن هم حرف صحیحه با حرف چیه؟ صحیحه موقعی که جمعش میبندیم اینالفل که همون با هست باید بهش فتح بدیم بگیم ذبیات بگیم چی؟ حمله حملتون حملات وردتون وردات دعد دعدات متوجه شدید؟ این هر چهار مثال مال همین قاعده هستن اما ادامه بدید وان کان مابموم اگر فا الف زمه داشت مانند خود واتون مانند چی خب واتون مثال نه آورده خب البته آورده تو تمرینات آورده زیاد هم آورده مانند شرفتون حجرتون بالیش غرفتون اینا همه در تمرین شماره سه خب اگر و انکان مزموم الفائی اگر این اسم شلاتی صحیح الان مزموم الفابر فاولفل چه داشت؟ مانند خط وطن او مکسورها یا فاولفل کسره داشت مانند کس وطن مانند چی؟ شجراتون نا شجارتون آخ آخ آخ آخ عجب مثالی زجر ماننده هندون بابا تکو کجای این مثالا را آورده شماره سی ماننده کس وطن یا هندون میگه جا في عینه سلاست و اوجوه اون موقع در این الفل سواجه جایزه در این الفل در این الفل سواجه جایزه الفتح میتونیم این رو فتح بدیم مانند ده خطواتون اگر جم ببندیم میتونیم در جمش خطا خوت... تارو فتح بدیم خطا وات خطا وات میتونیم ساکنش بدیم خطوات والاتباع و میتونیم همون حرکتی که فاول فل داره این الفل رو بدیم خطوات میتونیم ستا چه ایراب اینول رو بدیم اگر فاول فعل کسره یا زمه داشت در خوت زمه داره در خوت و تون زمه و از مفردش میفاید بله بله اگر مفرد فاول فعلش زمه یا کسره داشت اون موقع در جمع اینول حرکت میتونه بگیره ببینید؟ اگر مفرد فاول فیلش کسره یا زمه داشت در جمع این و میتونه سه حرکت بگیره خب این مثال برای زمانی بود که فاول داشت خوص اما یه مثالی رو میزنیم زمانی که کسره داشته باشه مانند کس واتون میتونیم بگیم کی سه میتونیم بگیم کس و میتونیم بگیم کی یعنی میتونیم ان رو فتحه بدیم میتونیم ساکنش بدیم و میتونیم حرکت فاعل فعل بدیم یعنی اگر فاعل کسر داشت ان هم کسره بدیم اگر فاعل ذمه داشت ان هم چی بدیم اینجا میگفتیم خود روات که در قرآن اومده است لا تَتَّبِعُوا اطَّعَةَ و اگر کسره داشت ان الف بدیم بدیم الاطباقن الف مانيش همينه ينفع الفعل اتبعوني زمه داش زمه باش بدهم انه در جمع واگر كسر داش باش بدهم هلا مثلا تمرينات شماره 3 گفته است الكلمات الاتية جمع مؤنث سالم و ما يجب او يجوز في اين كل جمع تأتي به ميك كلمات زيرو جمع مؤنث سالم ببن و بيان كن اگر حركته الفول يا جائز هست طول حرکت در اين الفول اگر فاول فیل فتحه داشت در مفرد در جمعش این الفیلش واجب بود که بهش فتحه بدی منان زبیان زبیات و مثال های که آورده بود ولی زمانی که این الفیل در مفرد فتحه کسر یازم مداشت در جمع اون موقع این الفیل سه حالت برش جایزه الان خجرتون در خجرتون چون فاول فیل شرف فعل زمداره الالف فل زم داره الفل شو در جنس حالت میتونه جایز بگیره جاهز بشه میتونیم بگیم حجرات که در قرآن اومده است سوره حجرات بله سوره ای داریم برام حجرات میتونیم بگیم حجرات و میتونیم بگیم حجرات بله در سوره حجرات هست رکعتون میتونیم فقط اینو الفیل در جنب فتحه بدیم، چون فاول فیل فتحه داره؟ رکعات میتونیم بدیم؟ هر باره کارو. بله، 4 رکعات در حدیث اومده. خب، شجره تون هم چنین، اما صخره تون هم چنین. البته یک نقطه رو هم به شما بگم. چطور هند میتونیم گیم هندات هید هید هندات نه دو، بله. نقطه دیگر، نقطه دیگر، شرایطش چی بودن؟ یک مفرد باشه، دو، یک اسم باشه، دو صلاحي باشه، سه صحيحل اینی باشه که اون صحيحل انسا، ساکل داشته باشه. اگر این شرط‌ها رو داشت شوکین مفرد که در هر حال مفرد باش بود باشه که بتونیم جمعش ببندیم نه بله پس اسم باشه واسه نباشه مثلا بخمتون مثلا بخمتون بخما یعنی بزرگ این صفته این دیگه این شامل این قاعده نمیشه اینو چطوری جمعی می‌بندیم بخمتون می‌گیم بخت مات همون مفردشه فقط در آخرش میاریم الف میاریم مثلا مریم مریم درسته اسمه ولی ثلاثی نیست دیگه میگیم مریمات یا سوره درست درسته اسم ولی چون صحیح و نیست سوره تن عین این هم شامل این قاعده نمیشه این زمانی که جمعش می‌بندی مفرد اشتر مفرد اشتر باقی فقط در آخر شی میاریم الیف مگیم صورات مگیم وراقتون وراقتون و تا میگیم سورات میگیم چی؟ ورقتون ورقاتون ورقاتون هم نمیتونیم مثل اون قاعده بگاریم چرا چون درست نه چون درست حرفی ورق چون درست که صحیح هل این هست ولی اینش حرکت داره اگر یک شروط نباشه دیگه اون قاعده فرق داره ورقتون جمعش میشه ورقات یعنی مفردش سالم ممکنی نمیدونم جمع محنس سالم دیگه در آخرش الفتو میاد. اگر از خودش تاداشت این تای حس میشه ورقتون این تایه ورقتون هست میشه الفتو اضافه میشه میشه ورقات میشه چی؟ که اینو را خوندیم این قاعده جمع بریم در جمعهای مکسر ما تا اینجای کار